نکته اینجا ارز بکنم عنوان بسری یعنی که میگم عنوان بصری مشهوره مشهور در لسان متاخرینه و الا تو مساده اصلی حدیثی و رجالی ما اصلا وجود خارجی نده عنوان بسری عنوان بسری روایت معروفی هست که اولین بار در مشکات الانوار سبت شیخ تبرسی نوه مرموصاب مجموع بیان شیخ علیه نه، نه فضل وارد شده بعد اون هم مرحوم شهید سانی در مونیت المورید از خط شهید اول و همسایی رو نقل کرده و هیچ در منابع بعضی چیزا دیدم گفته این از روایات اهل سنته اصلا تو کتاب اهل سنت هم تا اونجایی که من مراجعه کردم همچیز حدیثی وجود نداره حالا از کجا این حدیث در اومده شیوه های تحویرش هم اصلا با شیوه های تحویر عبارت احلویگ سازگار نیست و نظرم این چیزها رو باید بالکل کنار گذاشت و خدا رحمت کنه مرحوم حاصل علی قاضی رو معروفه که میگه شیشون میگفت محور ریاض چیزهای ایشون به باید عنوان بسری بوده این روش های نادرست اگرم میخواییم ما روایات اعتماد کنیم و محور ریاضت هامون روایت قرار بدیم روایت هایی که اصل داشته باشه نه این روایت هایی که در منابع اصلی حدیثی ما وارد نشونه مزامین هم چرس کنم اون دیگه عالی غیر عالی الفاظش که الفاظ متناسب اصلا با روایات اهل بیت نیست بله بعضی تعبیرات این روایت با روایت های نسبه و شریع تطبیق میکنم ولی نسبه و شریع هم بنابر تحقیق مالیمان صادق نیست و احصای در مدش داره که یک کسی گفت خدمه های گروه صحبت شد گفت با جدی تعبیر رو گفتن که حل عبودیه جوهرتون کنها ربوبیه این رو گفتن منبعه نداری کسی که باقا در مصفح شریعه هست آقای برو جدید شما چطور مصفح و شریعه رو حدیث میدونید مصفح شریعه که مالی شعیق بلخیه ایشون. حالا برحال مصفح و شریعه هم مثل رو با مصری